ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنی جامعه کسیه و دلخ خود از رق نکنی عیب دربیش و توانگر به کم و بیش بد است. کار بد مسلحت آنه است که مطلق نکنی رقم مقلطه بر دفتر دانش نزنی سر حق بر ورق شعبد ملحق نکنی تا اگر جرعی رندان نبه حرمت نوشد التفاعتش به می صاف و مروغ نکنیم خوش برانیم جهان در نظر راه روان فکر اسب سیاه و زین مقررق نکنیم آسمان کشتی عرباب هنر می شکند تکیان به که برین بحر معلق نکنیم گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید، گو تو خوش باش که ما گوش و احمق نکنیم، حافظر خص خطا گفت نگیریم بروب، ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم